سلام علیکم یا ابا عبدالله سلام بر او که چراغ هدایت است و کشتی نجات و سلام بر شما عاشقان کوی حسین علیه السلام سلام بر اشخاتون سلام بر دستهایتون که بر سینه های تفیده میخوره و دلایی که در مظلومیت سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام میسوزه حیر و بلیر مسلم با حبیب و حنیس و قاسم با سوید و سید و سالم مرد راه حسینی در پناه حسینی با سپاه حسینی مرد راه حسینی در پناه حسینی و سفا حسینی یا <تصفيق> <يا> حسین یا <تصفيق> مظلوم یا مظلوم یا حسین یا مظلوم یا حسین یا مظلوم یا حسین یا مظلوم سنیام از نو یا خدا نو چون سلیمان و جنو جابر چون بشیر و عبیدو آمر چون امیر و حییت ظاهر بر مدار حسینی، بیقرار حسینی، جان ساره حسینی. خب با کاروان کربدا رو در این برنامه خواهید چنید درس های از آشورا رو خواهید چنید صحبت خواهیم کرد با حجتورستان و مسلمین استاد داجه وردی در بوری خطبه منا که موضوع اصلی برنامه اون هست از سلام و عدب دارم خدمت شما حجتورستان و مسلمین استاد داجه وردی خوش آمد خواهش میکنم و علیکم السلام بسم الله الرحمن الرحیم صلی الله علیکه یا عبا عبدالله خدمت شما همکارانتو محترمتون و همه شنوندگان عزیز برنامه شما عرز سلام و ادب دارم ایام شهادت آقا رو خدمتتون تصلیت از میکنم در خدمت شما هستیم Come on. شواب به غم جداد هرم. بارش از نبی مشرم پیار پیار بسات بس و هيا چچ با زایی زمان خطبه منای حضرت عبا عبدالله رسین علیه السلام صحبت می کنیم برای شما شنبندگان گرامی و استاد داجبردی بیشتر توضیح میدن درباره خود به خطبه آیاتی رو بررسی کردیم دیروز که حضرت عبا با این آیات در حقیقت گوزیدی کردند به اخبار و ربانیون در عمل کردن به وزیفه شون. آیه 71 سوره مبارکی توبه رو در بحث دیروزمون بهش پرداختیم که قرار شده این کاملتر انشاءالتر باید خواهش میکنم بسم الله الرحمن الرحیم عوض بالله من شیطان الرجیم آیه این بسوره توبه و المؤمنون و المؤمنات بعد هم اولیاء بعدن. و بعدین یعمرون بالمعروف و ینحون عن المنکر و یقیمون الصلاه و یعتون از و یعتون الله و رسوله هم ولائك اس اگر همهم الله ان الله عزیز حکیم مؤمنین جمع مؤمنین مؤمن اینجا مطرح نیست مؤمنون جمع جامعه دینی بله گاهی در خطابات مؤمن خطاب است شخص خطاب است گاهی جمع خطاب هستند جامعه دینی خطاب است بله مؤمنون و مؤمنات همه وظیفه دارند بعضهم هم اولیا و بعد اولیا رو گفتیم هم معنی ولی داره، یاور داره هم معنی دوست داره، هم با هم دوست هم یاور هم دیگه هستند پشوانی هم دیگه هم ولی هم هستند سرپرست هم دیگه هستند کارشون چیه؟ این سرپرستشون در چی نمود داره؟ یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر اینا مستمرا امر معروف میکنند. و نهی از منکر دارن نماز به پا میدارن زکات رو میدهن من اینجا نکتر رو مدرک کنم جامعه دینی با دو روکن حفاظت میشه بله. یه رابطه با خدا که به پا داشتن نمازه یکی هم با زکات که ارتباط با خلق خداست و یکی اون الله مستمرن از خدا اطاعت میکنن و از رسولش اطاعت میکنن ارتباط اطاعتی خودشون رو رهانه درسته اینها سیره هم و اینا به زودی مورد رحمت خدا قرار میگیرند با اینکه که امر معروف میکنند نهی از منکر میکنند رحمت واسعه خدا که همه جارو و عالم رو گرفته رحمت خاص خدا در مراتب رشد و تعالی ما و تعالی جامعه تحقق پیدا الله اینالله عزیزون حکیم خدا هم عزت دارد و هم حکمت دارد گتره به یک جامعه نمی بخشه گتره بی جهت بی دلیل به یه شخصی نمی بخشه یک درختی که میخواد می بده بعد رشد کنه هیگه علال صلاح بعد شخص داشته باشه هیگه علال فلاح بعد داشته باشه تا مفله بشه بعد بانه. آقا عبا عبدالله نکته که اینجا مطرح میکنن، خوب دقت کنید ای که حضرت مطرح میکنن وقتی استناد به این آیه میکنن تفسیری که حضرت از آیه قرآن عبد حضرت به این جمع که 500 نفر هستند، بزرگان، نخبه ها هستند، شاخص های جامعه دینی زمان خودشون هستند، جامعه اسلامی حضرت میگه الله بل معرو و نهیان خدا عتاق قبل از اینکه نماز رو بگه میاد امرب معرو و نهی از منکر رو میگه میگه جامعه دینی وقتی که جامعه دینی شکل گرفت ببینی این دین میخواد مطرح بشه معرفت مطرح میشه بله. اطاعت از رسول مطرح میشه اعتقاد به خدا مطرح میشه تا اعتقاد با خدا و باور دینی نباشه مؤمن ته محقق نمیشه درست. تا گسترش پیدا نکنه مؤمنین شک نمیگیرند. وقتی که مؤمنین شک گرفتن حفاظت این جامعه اولویتش با امر به معروفه اتصال این جامعه با من... منابع معرفتی خودش و منابع شکلی خودش باید حفظ بشه حضرت میفرمایند خداوند امر معروف و نهی از منکر رو فریضهی قرار داد و مقدم نماز فریضه است زکات فریضه است اما خدا نماز اول نماز و زکات رو بگه اول امر معروف رو گفت چرا؟ چون خداوند میدونه؟ علمهی به انها به خاطر اینکه اگر امر معروف عدا بشود همه فرائز شکل میگیره درسته و اگر امر معروف ترک بشود فرائز قوامی نخواهد داشت پشوانه و عمود اجرایی انجام همه تکالیف نه اقاید تکالیف ما با امر معروف و نهی از منکر حالا من جای شبهه ای مطرح می بشه تو بحث بعدن بهش میفروضم نمیخوام این کلماتی ده. که ابو عبد الله داره اینجا کنم خب ممکنه کسی سوال بکنه خب نماز میگن این قابلت قابلت ما سوا نماز مهمتر تری امر معروف و از منکر مانه. ولایت مهم تره یا نماز و امر معروف علم تو ناد به شاین کما نودیه بل که میگه اسلام بر پنج رکنه بر صلات و زکات و حج و بعد ذلایت و هیچ چیز به اندازه بیورد بیشت سفارش نشد این تو پرانتز باشه من این رو توضیح خواهم لازم شما یای کنم باشم فراموش کنم چون کلام حضرت نمیخوام خوانده. تقطی کنم حضرت میگن تو فرائز امر معروف مهم از همه چون امر معروف وقتی نباشه فرائز ادا نخواهد شد حضرت میگن ازا ادیت زمانی که امر معروف بنیکی از مکل ادا بشود و اوقیمت و به پا داشته بشود دقت کنید امر معروف کلامی نیست فقط گفتنی نیست فقط شعاری نیست فقط تو بنر زدن نیست تو تبلیغات فقط گفتن نیست به پا داشتن است باید اقامه امر معروف و اقیمت استقامت الفراائض استقامت فرائز یک قیام فرائضه، یک استقامت فرائض. محکم شدن همه فرائض، زکات و خمس و حج و همه اینا به امر معروف و نهی ازمون منکر. خب چه امر معروف و نهی از کردی؟ من کلام حضرت رو میخورم بعد برمیگردیم با بله. حضور شما حضرت میفرمانه همه فرایزی که خداوند به عنوان احکام برنامه برنامه قضایی کیفری، حقوقی روابط خانواده روابط اجتماعی همه قبل رب... که اسمش فرایزه مجموعه احکام و نظاماتی که اسلام برای هدایت جامعه بشری تدوین کرده روابط بین‌الملل روابط داخلی همه این روابط وقتی بله. که چه چیز... به حساب اونهایی که سعب سخته و اونهایی که آسون هست برگه از فراز خیلی سخته جهاد سخته انوال دادن سخته فراز مثلا بهداشت رو مراعات کن راحت افراد انجام بدن خیلی برای شون نداره چرا؟ چرا اگر امر به معروف نباشد فرایض دیگه استقامت و قوام و محکم نمیشوند حضرت می‌فرزند: «ذالک ان الامر معروف و نهی عن المنکر دعاء الی به همه اسلامه. یک قسمت رو نمیگیره. بله. تمامی اسلام رو در بر میگیره. معرض دل مظالم. امر معروف که متولیان اصلیش هم همه مؤمنین هستن و در اونها علما شاخص‌ترن چون به اندازه فهمشون و درکشون و جایگاهشون وظیفه خطیری دارند، خواص وظیفه بیشتری دارند، به خاطر اینه که از هم دین و هم از متدینین هم از منافع دینی، از مظلوم جامعه، امر معروفه که دفاع میکنه، حمایت میکنه. یک معروف ادالته، یک معروف حفظ منافع مردمه، یک معروف اجراع عادلانه منافع و قدرت و مکنت و ثروت و فرصت بله فقط امر معروف این نیست که متاسفانه ما تو جامعه قم خودمون فقط من اینجا باز به هم انتقاد نکنم فقط من به این فقط بودن اعتراضم نه به مورد فقط بگیم آقا بید مثلا به حجاب چرا آقا حجاب بده حجاب محدود ده عامله یک آملش قبلی خوب نکرن یا عاملش بی ادالتی میاد از من روحانی بد میبینه میره تو دادگاه بد میبینه میاد علامت مخالفت خودشو با موابین گذاشتن نشون میده اگه با شخصیت برخورد کنی پنجاه درصد برد برطرف میشه و ساختار لباس و چادرای مبتزل اصلا بیچادری ارزانتر از با چادری خب این که مسئوله؟ حکومت مسئوله؟ دولت مسئوله؟ من مسئولین مسئولان اونا سیاست گذارینه ما چطور میتونیم اینو مطرح میکنم تو بحث ابرمذهب ما چطور میتونیم یه ساختاره صحیح رو معروف کنیم تو صدا و سیمام اون باشه هنرپیشه هایی که مطرح میکنید پوششش غیر از اون باشه میگید آقا ما کلی نمیتونیم اونها رو مجبور کنن میتونید مجبور نکنید میتونید نخواهید چهرش کنید خب من نمیخوام هاشیه برم معرض دل مظالم ببینی رد مظالم یعنی اون انوار اون امکانات اون مظالیمی که مطرح میشه امر به معروفی که نشون بده اینقدر جامعه گویاست امر معروفی یک صدای عادل و یک صدای گویا برای دفاع از حقوق مظلوم بله اگه تو جامعه ما اگه تو همین شهر خودمو برای ما مهاره برای همه دنیا است. برای, برای اما تو همین قر... قوم ما. اگر ما رفتیم تو شهرداری به شما ظلم شد. احدی نمیگه. تو نماز جمعه ما نمیگم. من روحانی تو منبر نمیگم. چون بگم شهردار گله میکنه. فرماندار گله میکنه. استاندار گله میکنه. فلان آقا گله میکنه. گراه هم نمیدن. خواهد این کارو میکنی مظلوم برای نشون دادن ای ظلمی که بهش شده چیکار کنه؟ من بعد زبان گویای رد مظالم باشم. دیویزا فرموید که یا ترسه که نمیذاره من بگم. یا رهبه رح... یا... احسن آفرین. شما جایی که من یادم میره خیلی مهمه. سبت. من چرا نمیگم؟ آقا میگم اگه سر درم به منم هم گفتن گایی. به من میگم گای که منبرات شما تون میگه که پای منبر باید. اتفاقا حرفایی پای منبر باید بالای منبر زد. اگر من حرفایی مردم رو تو منبرم نزنم از رادیوی خارج میاد با سم میکنه به خوردشون میده. ما باید حرفا رو بزنیم. البته با حفظ شعون تضعیف نمیکنی. کنی. هیچ زمان امر معروف تضعیف نظام نیست. نظامی که قویه نظامی که ریشه داره نظامی که عدالت پروره نظامی که رهبریش عادل و زاهد و مجاهدی مثل مقام معظم رهبری همیشه گفتنم هم تقویت این نظام نه. اونهایی که فکر میکنن گفتن مشکلات تضعیف نظام تضعیف خودشونه نه تیف نظام درست اگر من فرضگیری به عنوان یک من مدیف به عنوان من از خودم همیشه میگم ببخشید دوستان روحانی درست. که من همیشه مثال از خودم میزنم چون خودم رو اول میخوام مخاطب قرار بدم. اگر من آمدم شدم خواسته شما خواسته ضعیفترین افراد انگیزه من هم من نگرانی بزرگان ما حفظ کوچ کارشون حس ضعیف شد. هفت جوان ها شد. از اونها شروع کردی لباس نور رو به قنبر دادیم ماشین خوب رو به جوان دادی امکان صدر مجلس رو به فقرا دادی ندادیم به خودمون حالا من دارم مثالایی که دارم میزنم حضرت دارن میفرمونن که اگر امر معروف انجام بشه این دعوت به همه اسلام شیرین میشه گوارا میشه ببینید چرا از ایرانی که عجم بودن علی که عرب بود برای قریش بود به او عشق ورزیدن چون در علی عدالت دیدن در علی محبت و عشق دیدن با علی هنوز هم دارن با علی و اولاد علی زندگی میکنن ببینید تو تمام کوههای کشور ما امامزاده هست چرا آمدن؟ چون ما ادالت دوست بودیم اینها از بنی عباسی که عرب بودن فرار میکردن میمندن در کاشان ما پناه گرفتند و اونجا حتی قصد کشته می شدن. چرا ایش ادالت در کام داشتن و ادالت همیشه برای عموم مردم شیرینه اینها از اونا معنوی بودن رحبان و احبار ربانیون خواست اینهایی که به تعبیر آقا ابو عبدالله اینهایی که وظیفه دارند دین رو خوب بفهمن خوب بگوین خوب ترک کنن و خوب اجرا کنن و دفاع کنن از اجرا شدن خوب او بله حضرت میگن اگر معرض الظالم و مخالفت ظالم خیلی حرف عجیبه اینجا از اون جهادایی که خیلی سخته با ظالم مخالفت کن کسی که ظلم میکنه مظالم رو بعد گردونی به اهلش بله و با ظالم مخالفت کنی کسی که از حد تجاوز میکنه که میخواد باشه اول ارشاد تذکر موس... موعزه بعد روتوش کردن بعد برخورد کردن اونم نه اینکه آقا هم‌حزبی منه آقا اشکالی نداره شرایط فرق میکنه زمان با زمان فرق میکنه دشمن بنه برام براش یک کلاخ چلو کلاخ این نشون میده که جامعه به اون عدالت درش نمیده نه جامعه از درون ریشه هاش و قسمت الفی حالا منو بعدا از من توضیح بدم ف یعنی امکانات بله اینجا خیلی جای حرفه من اشاره دو سه جلسه رو بعد ف یعنی امکانات آقا تو این مملکت ما تو همین شهر ما امکانات فی یعنی ق... ام... انفال امکاناتی ما عموم مردم عموم مردمه مردم. ببینید ما فقهمون ناقص داره پیاده میشه فقه حوزه ما در حکومت ما داره ناقص پیاده میشه بیامون رو گذاشتن بیامون برای احیا کردن چرا نمیذید مردم احیا کنم چرا امکانات رو گرفتید میایید به افراد خواص میدید، با شرایط میدید، شرایطم میدید، پول میگیرید. بنابود از مسکن مه پول بگیرید. زمین مجانی بهشون بدید. وام رو مجانی میشون میشه درصد بهشون میدید. حالا فکر کنید یه گردن کلفت با اومد برد کانادا. حالا به چند میلیونم شما یه وام های قرض الحسنه بدید. چی میشه؟ کجا بر میخوره؟ جلوی جلو ریخت و پاچو جلو نمیرم برگزاری بعضی از جشن‌های زائد رو بگیریم سمینارها رو بخوام که چه کار کنیم بگیریم میتونیم بدیم بخوام ماسک رو بسازیم میتونیم ازدواج رو تامین کنیم میتونیم توانمند کنیم ببینید در حقیقت امکاناتی که یه جایی داره از بین میره و هر حرج میشه رو بیایم جمع جورشون کنیم و درست تقسیمشون کنیم امم امفال امکانات عمومی که تعبیری فقه ما اینه که زاچع ال امام اینها بعد امام، این رهبر جامعه، امام معصوم و اون کسی که از طرف امام اجازه داره در زمان غیبت ولی عرب، موظف است. یشوم موظف هستند. انفار رو، درست دولت اسلام و دولت, دولت کارگزار رهبره. ما جدا نداریم. من. باید انفار، امکانات، رودها، حاشیه جنگلها، مواد بنابر نقلی اینها جاز انفر اون چیزه که منافع عمومی داره عمومیه برای من. منافع عموم معدم این رو آطول و باطل بذاریم اینها باید برنامه روش گذاشته باشه قسمته امیر در نهجور بلاغه میفرمان یکی از وظایفی که والی دارد که اطاعتش واجب است اینه که انبار رو حفظ کند و زیاد کند توفیر الفی توفیر این زیاد کردن امکانات رو زیاد کند ترمایه گذاری کند هم خوب به کار بگیرن یه گوشش رو این بگیره یه گوشش رو اون بگیره خیلی عزم میخوام حالا من حرفام شاید تعلق باشه این سازمان بهده بگیره این با موتور را بیفته از این ور زمین تااج که بنزین موتورش داره بره بگی زمین شد قدیم ما در قوم می آقا چوبنداز چوب انداز بود اقا چندمد زمین یه چوب نداازهز دورتر بود. بود چون زمین اوه ازش نداره متی نبود الان دیگه شده موتوری مثلا اراضی رو سوار موتور بشی یا آقا چند در چنده مثلا موتور یاماهای 100 از اینجا توله چون یاماهای 120 ارزش بعدم بیایم یه ساختمونهایی بذاریم بعدم بگیم آقا اینا دولتیه یکی از مشکلاتی که الان ما دارو خود دولته ببخشید دیگه الان من پای حرف حرفا میاستادم یکی از مشکلاتی که مادار من به شهردار و به مسئولین بعضی از شهرها صحبت شد گفتم شما اگر بیاید به مردم واگذار کن مردم بهده میتونم مدیریت بکنن میگیرن گیر میکنن بگید چه ربطی داره به روز 4م پنجم محرم شما دارین این اجتماع اشتماری میزدید خب آقا عبدالله فرمودن فرمودن مخالفت الظالم و قسمت الالفیه و القنایم من میخواستم همینجا این نکته رو اشاره کنم بهش که این صحبتایی که داریم میکنیم در حقیقت شرح حالی است که از زبان امام علیه السلام برای اون دوره و اون زمان هست حالا بعضیش مطابقت هم داره با این زمانی که ما داریم درش زندگی میکنیم تعجب نکنید از اینکه اگر بعضی وقتا بحثا بحشه. به جای دیگه میکشه می‌کشه بخاطر این هست که داریم تبین میکنیم اون دور زمانه رو که چه کرده مابی چه, بنده بنده چه, بنده چه بنده کرده یعزی چه کرده و اونجا چه حالا ببینید ما همچین حسینی ما همراه بشیم یا نه ببنه. من طلبه من معمور من نمی‌دونم چی میتونم حضرت میگن که فی امکانات عمومی غنایم منافع یکی از غنایم نفت ماست گاز ماست یکی از غنایم امکانات مالی ماست منه. یکی از چیزهایی که صدقات صدقات هم خمسه هم صدقه است این بعد برسی به جایگاه هستی خودش کی گفته ما منافع صدقات رو و قناعه ما صرف عموم پول دارا کنیم، این برای برد اول مال فقراست، ما لیل ایتامه و ابن ما تا مادامی که ببینید من خدا رحمت کن حضرت امام رو می اگر بازاری اون زمانی که به حساب قبل از انقلاب بله. پیروزی انقلاب اگر بازار تهران خمسشو بده ما در ایران فقیر نخواهیم داشت اون زمان بله. حالا شما بیایید در زمانی که نفتمش اضافه کنید یعنی پولایی که شاه میخوردم بیا دیوی آخ... آقای شاه موجوده موجود بده دیگه بده امکانات یعنی تو نظام باید ما بیاییم منافع خودشون خودمون که یکی از قناعه ما, ما معدن است یا معدن است که نفت و گاز از معادن ما هستند، تلاعه ما مج... باید ما یک پنجام منافعشو بدیم به فقرا. میدیم چرا فرقی تو جامعه موزی زیاده ما منافعشو داریم جای دیگه مصرف میکنیم آقا بعد مصرف نمی کنیم میخوای مصرف بکنیم برای مثلا ساختن مترو تهران. کی گفته وقتی که اطراف تهران ما دخمه داریم مترو مال همه بسازی درستازید اگه دارید اپولو خودشون بسازیم ندارید اول اینا رو حق اینا این مال خودشونه نباید فقیر داشته باش. فقیر پروری نکن. نباید بکنیم یعنی ببینید تو جامعه ای که شما دارید میرید از مترو کذایی که دو میلیارد دلار میخوام بذارم برای مترو تهران هم سرش هم دعواست میکنن. کنارش نباید یه خانه دو دوتا بچه عقل بگیره فقیر باشه این اسلامی نیست این حق دارد نباید جنوب تهران و هنوز حلبی داشته باشی این اسلامی نیست مردم این جامعه دینی با احکامش دینی است نمیتونیم بعضیاشو بگیریم بعضیاشو هاشو نگیریم نعمونو به بعد و نکفرو به بعض بشیم اقتصاد دینی ما که از آقا و عبدالله اینجا بهش می‌پردازند، می‌پردازان، حضرت می‌فرمایند غنایم رو و صدقات رو یعنی زکات، خمس، خمس مال سادات، نباید بعد سادات داشته باشه. نباید خمس خرجه نمیدونم کاشی بکنی هیچ از علمای اجازه نمیدن که وجوهات رو خرج حتی مراسم آقا ابو عبدالله کنن، خرج حسینیه بکنه، خرج مسجد بکنه، خرج موارد خودش بکنه. خدا رحمت کنه که از بزرگان و مراجع شاید راضی نباشن اسمشون میگن استاد بنده هست. من گاهی خدمت چون رفتم، میشون من گفتن فلانی شما صدقات دارید به من بدید، من این وجوهات رو بدم به شما بدید به طلبای درس خون. گفتم آقا ما یه چه فرقی می کنه؟ گفتن نه بین طلبه درس خون و طلبه درس نخون نمیشه وجوهات رو داد صدقه میشه داد چون فقیره اما وجوهات نمیشه داد اینقدر دقت درسته از من صدقه وجوهات بیشتر بگیرید بدید به طلبای درس خون جوانو که کم شهری هستن اونورا روش کنن من تو نمیتونم این بند خدایی که محتاج اما درس خون نیست به دلالی نمیتونه درس بخون. ما این دکتا رو باید داشته باشیم آخرین نکتا رو در همین رو برمیگردیم حضرت میفرمایان رد مظالم تقسیم کردن منابع اخذ صدقات بانه. که مالیات اسلامی هست ما اینها رو بعد تقسیم کنیم هم موازهش رو بشناسیم و هم در جایگاهش مصرف کنیم یعنی هم خوب بگیریم خوب رو بگیریم حالا نمیگیریم آقا این درد جامعه ماست منم اگر نگم مثل از اون کسانی میشم که آقا ابو عبدالله لعنشون کردن نوزو بله ما اگر گردن کلوفتا نمیگیریم با یه نامه تخصیف میدیم که مغازه دار که 450 هزارتان از پوستشو میکنم ما رعفت و رحمت دینی بر اینه که ادالت یعنی مسئولین اخزه گرفتن منابع منافع نمیدونم مالیات امکانات مصرف کردن خوب به جا بگیریم بله. به جا مدیریت کنیم به جا مصرف کنیم چیزی تشبه افراد نمیرسه و ادعا و میرسه چیزی نمیرسه ما در مصرف امکاناتی که قناعه است آقا عبا عبدالله میفهمن شما ای علما ای رحبانی رحبان، ربانیون شما هیچ وابستگی به حکومت ندارید علتی که علمای شیعه در طول تاریخ وابستگی به حکومت ها نداشتند اگر هم داشتند حکومت ها از اینها خواستند اینها خودشون وارد نشدن اینه که وابسته نباشند تا زبانشون آزاد باش. تا بتونم بیان کنم به خاطر همی که علماء ما رو شهید میکنن شهید اول داریم شهید دوم داریم شهید سوم داریم مرحومه صد رو به شهادت رسوندن چون زبان اینها زبان کلام خدا و کلام وحیه در قیده کسی نبود. در قیده کسی نبودن اینها میتونن مدافع باشن بس ببینید چهار آیه رو آقا با عبدالله مطرح کرد دعای نقش و جایگاه رحبان. ربانیون اینها مطرح شدند بله که اینها خط ادامه دهنده جریان وهاب و وظیفه دفاع از وهاب و نهی مردم از گفتارش و کردار بدو درست حکل و به بسم الله یسنعون یک آیم حضرت ما تحلیل کردن که چرا آقای 700 نفری که شما اینجا نشستید و نماینده جهان اسلام هستید شما در مقابل مظالم در مقابل ظالم در مقابل شیوه حکومت در مقابل دفاع کردن از ظلمی که داره به عباد میشه کوتاهی کردید به خاطر دو جهت، رحبت و رقبت خوف از اونها و میل و تمع این دوتا و ای جامعه ای دینی بدانید اگر بخواهید مسائل خودتون رو حل کنید باید فرهنگ امر به معروف در این هیت هیطه حفظ تمامی اسلام بله. حفظ منافع اسلام حفظ جریان گرفتن منابع شناسایی منابع حقوق مردم و رسوندن حق به اهلش مواضعش برمی‌داره سخت این تیتر چهار آیه ای که در اینجا مطرح شده, شده که ما حالا من در خیلی از کنم متشتت خدمت و مطرحم مجذرم که مفید باشه خیلی ممنون متکرم حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین لالا حسین کریم شهید کریم در تقویم دل روز فرزندان غیله بنی هاشم زینب کبری سلام الله علیها است محمد و اون ابن عبدالله ابن جعفر ابن عبی طالب دو گل نورست از بوستان بنی هاشم نجیب زادگانی شریف و بیادار هنگامی را که هر دو با بغز نزد مادرشان آمدند و گفتند مادر امام رخصت میدان نمیدهد کاری بکن و مادر میگوید عزیزان پای مرا به میان نکشید محمد میگوید چرا مادر تو خواهر امامی عزیزترین محبوب اویی و مادر میگوید نمیخواهم امام گمان کند به جایی رسیده است که من دارم عزیزانم را فدایش میکنم از چشمان او شرم میکنم محمد میگوید گوید ماندن بیش از این تحمل ناپذیر است دست ما و دامانت مادر مادر چشم به آسمان می دوزد قامت دو نوجوان را دوره میکند و میگوید رمز این کار را به شما میگویم تا ببینم خودتان چه میکنید بروید و امام را به مادرش زهرا قسم دهید. بروید و مادر را به مادرش زهرا قسم دهید. و در دل میگوید این دو نو گل رو نو رسته. چه قابل دارد در پیش پای حسین؟ زینب سلام الله علیها به خیمه می رود و وقتی تنین فریاد اون و رجزخانی او را میشنود میفهمد می فهمد که کلام رمز کار خودش را کرده است دو که به جان محشر زمان شد شیران نسل جعفر تیار یا علی رخصت اگر نداد مبادا حیا کنیم مذر به سینه دست راست در این میدان به جان, جان یاس شکست جه. به جان مادر او را به جان حضرت زهراغ سمدهی خدا داشت اینا طاقت ندار که <تصفح> چی <تصفح> قبول کن كن که نبینن تشنه میبوسید شکاف تیر سشونه گلوی پرپر همچی که اجازه داد دویدم تو بغل مادر گفت اجازه میدم ولی برید سیر مادرتون رو نگاه گلید بچه رو را میدان گو چرین رجا زمین آزاد ها خوندن اول جمله ی که گفتم صدا زدن ما ابلای زینب بعد گفتن ابی حسین و نمالمی یه وقت صدای عالشون بود شنو حبیب عبدالله با اجل خود شو رسول برسه حسین باید سر ار کدوم این شهدات زود سرها را از بدنها جدار نمیتونه جواب زینب را بده خودشو با اجل رسون هدنها را به خیمه آورده زینب نیومه حسن جان ماندم در این خیمه که شرمت خواه نجیره زحمه منم تمام چمن شد همین دو گل شرمنده دایه سر تو ای برادر این خاک غریب برا تو صدا حبیبم ای نگاره جانم جانم از قامت نو شکیبم برادر حبیبم ای نگار ما وای همه یا خل با بسم الله الرحمن الرحیم همثل که در برنامه‌های قبل اشاره شد بعد از ورود امام حسین علیه السلام به کربلا در دوم محرم و از اون طرف ورود سپاه عمر سعد به کربلا در روز سوم محرم با مأموریتی که از ناحیه عبیدالله بن زیاد پیدا کرده بود حرکتی در کوفه انجام گرفت از ناهی عبدالله ابن زیاد برای تکمیر سپاه عمر سعد بدنه شهر کوفه بدنه ای بود که افراد مزبزب و متزلزل درش بودن یعنی از افراد خائن و دنیا طلب و اشراف بگیریم ها به افرادی که روحیه شیعی داشتند، اما به لحاظ تقوا و ایمان در اون درجه نبودند که بتوانند خطرات رو بر جان بخرند و دست از دنیا بکشند و خود رو به امام حسین و سپاه حق ملحق کنند گفته شده که از هر چند صد نفری که از کوفه به اجبار یا به اکراه با تهدید بر تخریب خانه ها آتش خانه ها، یا قتل اهل و ایال توسط امیدالله ابن زیاد اینها مجبور می به سمت کربرا حرکت بکنند چند ده نفری به کربلا می آمدن و بقیه متواری می شدن و خود این نشون میده که بنابراین تمام کوفیان راغب به جنگ با امام حسین علیه السلام نبودند. منتاب با همین تعدادی که گفته شده به صورت درصدی محدود از اون افرادی که اعظام می شدن به کربلا رفته رفته بر اساس روایات معتبر و قابل اعتماد قریب به سی هزار نفر در طی این چند روزی که بعد از ورود امام حسین علیه السلام به کربلا تا روز آشورا هی شد قریب سی هزار نفر سپاه در کربلا تجمع کردند برای مقابله با شخصیتی همچون امام حسین علیه السلام به سپاه اندک او و به هر حال این سی هزار نفر هم درشون افراد شرور و خبیص و معاند امام حسین وجود داشتند تا برزد به کسانی که بر اساس دنیا تلبی و بر اساس خوف از عبیدالله ابن زیاد و اقدامات و او بناچار در میان این به عنوان سیاهی لشکر حضور پیدا کرده بودند ما هم گفتگو کنیم با حجت و المسلمین استاد داجی وردی در باره خطبه مهنای داجی وردی در خدمت هستم. خواهش می کنم اصلی رو که حضرت آقا ابو عبداللهم حسین علیه السلام فرمودن رو من اجازه می این چند دقیقه که باقی مونده مدار توضیح بدم. حتما واجب امر معروفه. و ان شاء فردا می جلسه بیشتر درم مساله اون جای صحبت خیلی داره. اهمیتی آقا مطرح کردم صد. از صدر بحثشون اما ما بهشواب بخاطر اینکه نتیجه بگیریم و تمام خود برو. گفتگو کرده باشیم از اون میگذاریم ببینید ما یه اصلی داریم اصل ارشاد تبلیغ انذار که رسول انجام میده بلی. یه اصلی داریم موعزه یه اصلی داریم امر به معروف بله. امر معروف زمانه که جامعه دینی شک میگیره برای حفاظت ارکان فرائز و برای که این ارزش ها همیشه زنده باشه پایدار باشه و یه حفاظت درونی باشه یه واکسیناسیون درونی باشه همیشه باید حضور داشته باید. حضور بین همه اقشار همه اقشار به اندازه توانشون اندازه فهمشون و داره. بعد از شناخت معروف درست. امر یعنید مطالبه طلب کردم شما چون موقع چیز رو طلب میکنید وقتی که او رو میشناسید و میخوایید و محبوبتون میشه وجم مطلوبتون میشه وقتی که جامعهی در یه مرحله من نمیگم امر معروف اصلا نباید باشه تا ارشاد باشد نه ما نباید ارشاد رو و موعظه رو و انذار رو و تبلیغ رو فراموش کنی نفعتا وارد امر معروف و کرد بشی باید به شناخت های ریشه های معرفتی بپردازیم یه مطلب پس جایگاه و نقش امر معروف کجاست؟ اهمیتش کجاست؟ چه کسانی باید امر معروف بکنن؟ امر معروف الزابن زبانیست عملیست حتی آقا با عبدالله علیه السلام یکی از اهداف خودشونو که مطمئن میکنن آمراب المعروف و انها انلمون کرد من مادم امر معروف بکنم اینه حتی خروج حضرت عنوان امر معروف رو بیدان میکنن حتی امر معروف اقدامی هم در اما کجا به چه صورت دلستم. این باید درش کاملا ما بهش پس چه کسانی در چه محدوده ای با چه شرایطی باید امر معروف تحقق پیدا بکنه یک و شناخت معروف ها مطلوب شدن معروف ها باید سرلوحه کار قرار بگیره باید. حالت خشونت نداره امر معروف امر معروف تحمیلی نیست اما مثل شما برای اینکه یک جایی رو که دارید جاده هراز میرید به خاطر اینکه راننده احساس بکنه که موانع دو دره بیفته یک سری موانعی رو میذارید آگاه کننده موانع برحزر دارنده خطر رو برای جامعه امر معروف ایجاد میکنه ما عناوین ما تواصی به حق داریم تواصی به صبر داریم ارشاد داریم اینا هر کدوم یک کارایی خودش رو در زمان خودش داره تعاون داریم تعاون علی الفرض تعاون بر کارهای خیر داریم بله جامعه دین جامعه است یه جامعه منطقیه، یه جامعه پویاس، مسئولیتش هم عمومه. نمیخوام یه آقا شما فقط برای اینکه بهداشت تو جامعه ما سرایت پیدا کنه و شامل بشه فقط دکترها باید مراد کنند نه برای همه عمومه. اونای وظیفه خاص خودشون دارن، وظیفه ارشاد دارن، بهداشت شدن، اما باید بگوین محافظت کنن، بسرسازی بس کنن، درمانگاه بذرد. من هم به عنوان یک پدر، من هم به عنوان ف... مسئول کارگاه باید, باید مراقب. مراقبت کنم، آگاه باشم، حساس باشم. یک مطلب هست که ما ان فردا فردا و میپردازیم با توجه به آیاتی و بیانی که آقا و عبدالله اینجا اهمیت بشه یکی شمول امر معروفه. همیشه این نیست که من بیام به افراد، نه. ازت فرمودند تا اینکه بیانی که دارن کسی که ظلم میکنه کسی که جایگاه خودش رو داره سوء استفاده میکنه. صاحبان قدرت، صاحبان مکنت. اینم با توجه به آیات بهش میپردازیم. کنتم خیر امته. آیه قرآن هست که شما بهترین امت هستید، اخرجت للناس برای عموم آمدید. جامعه دینی وقتی که می آید با امر معروف همه ابعاد خودشو نزیف میکند، یک جلوگو می شود برای بشریت. تامرون بالمعروف بهتر امت بودن شما از این بابتی که شما همیشه خوبی ها رو در جهان پخش میکنید شما ادالت خواهید شما خیر خواهید شما خوبی خواه هستید شما عشق رو گسترش میدهید درسته. من از کردم تو قسمت اوله بس خیلی نگرانی هستم که هم معروف تلخش کنیم به قول را ها رو کنیم حالش کنیم مردم خان حال کنن آنشین بشین آقا شما طبق سلیقه من زندگی کنم نه اینجور نیست همه همون میخواییم طبق خدا و طبق حفاظت اجتماعی همه بهره بریم خوبی برای همه همه هست یه مطلب من تو صحبت قبل خودم یه سری موارد مطرح کردم لازم میدونم برای خودم این رو توصیح بدم ببینید یک جامعه که داره به طرف بالا میره رونده مثل جامعه ما که ست سال مورد بیمهری و بیلطفیه نمیدام حکام خودش قرار گرفته دولتهای بزرگ تضعیفش کرده قطعا ایراده های ما داریم تو فرهنگمون تو روابطمون، تو اقتصادمون یه چیز رو به بردی. بله. داریم از تمام این شرائطی که هم سخت بوده و هم الان سختش کرده به مقداری که به ما فشار میارن برون ما توان انرژی داریم ما ریشه داریم بله. هم یک تمدن ایرانی اسلامیه احیاء تمدن ایرانی اسلامی چون ر داریم بخواییم رب بدیم مسئله اجتماعیمون پس یک سابقه داریم ما یک وز و بالی از قبل در خاطره های ما مونده در فرهنگ ما مونده بله. که اینا از کنم تبدیل و احسن بشه خوب بشه و یه اهداف عالی داریم برست. ایرادم داریم بیشت قابل توجیه گفته بزرگی میفرمود از اساتید ما که نسبت مشکلاتی که داریم بخوایم توجیه کنیم حماقته بله. بخوایم تضیف کنیم خیانته همه ملت ها مشکل داره ملت بی مشکل نیست کسی که میخواد به قول برسه مشکل داره چی مهم تکمیل رسالت پس ما ما بخویم مشکلات رو دلیل کنیم اینکه آقا ما به درد نمیخوریم ما, ما قدیم یادمه در که میرفتم میچید که منو خیلی رنج میداد میگفتن ایرانی اصلا نمیتونه خیلی عذ میخوام یه آفتابارم لهیم کنه ایرانی شاید خیلی عذ میخوام مظارت میخوام از صدای عمومی نمیدونم آمریکا میگن ایرانی ها چی هستن و بیوفان و چی هستن و نمیدونم علی که خیلی من یادمه چیزی که تو زائقه من تلقیش هنوز باقی مونده که گاهن دبیرای ما به خاطر که ما رو عدب کنن میگفتن بله آقا ایرانی ها بین از من ایرانی ها کلاشن چی هستن دروقو هم. چی هم میزدن تو سر یک ملتی که میخواد بزرگ بشه این فرهنگ غلط شده بود حالا این ایرانی که اومده الان انقدر جلودار شده که می‌ترسن. که از خودشون هم جلو قرار گرفت طبیعتن یکی داره ایجاد میکنن اگر ما بخوایم توجیه بکنیم میگه آقا نه ما نزد داریم ما همه چیزمون درسته خب این دیگه ویروس رو تو بدن قبول کردنی خطرناک میشه امر معروف نف میکنه رو میگه بسیار حساس باش. بدن زنده و بدن پاک و قلب زلال کوچکیترین. خالم که بهت خودش رو نشون میده چون زلاله انتقاد وجود داشته باشه من خودم رو انتقاد پذیر کنم انتقاد بپذیرم اجازه بدم گفتگو کنم ببینید تعاویلی که ازت آقا یک رحبری که این همه کار داره میشینه تو شهرستان که میره. گروه ها میان حرف میزنن یادداشت میکنه یادداشت داشت کنن با اینکه بیشتر این موارد مواد رو میدونن من خودم دو هم وقتی مسائل رو مثلا و دو حوزه میخواستم تحقیق کنم بعد از صحبت تا... کردن حرفایی حضر... که آقا ده سال پیش دادن به مراتب بچه‌ها که ما الان میفهمیم جلوتره با این توصیف گوش میدن انتقادات رو گوش میدن اقدام میکنن پیگیری میکنن دو هم شخصا خودشون پیگیری میکنن این فرهنگسازی که آقا گوش مستمع داشته باشی مستمع خوبی باشه در همین گفتگوها یک سری عف... حرفا، ها یک سری هست. عف... اولا محبت ایجاد میشه. حالا من یه سوالی مطرح بکنم. میگه رسول الله ارتباط با خدا ندارن چرا قرآن میگه با امتت مشورت کن؟ شاورهم فلعم. مشاوره دادن شخصیته. درسته. یاد گرفتن نیست. فإذا عظمت فتوکل علی الله، مشاور کن. به رسول میگه شاورهم فلعم. وقتی رسول الله میاد مشاوریم عمت شخصیت پیدا میکنه افراد شخصیت پیدا میکنند پس ببینید این رکن رو بپذیریم ما جامعه ای هستیم جامعه رونده اون کسی که میرود ممکنه املاش دو تا غلط داشته باشد همه اون دو تا غلط نیست یک فقط غلطها رو ببینیم معیوس میشیم جوابها رو ببینیم مغرور میشیم هر دو رو با هم ببینیم خوبها رو حفظ کنیم برامرزی کنیم مستحکمش کنیم برای بدیهام نفیش کنیم از از غلطهای خودمون تجربه بگیریم اصلو بپذیریم تضعیف مبانی دینمون تضعیف جامعهمون تضعیف انقلابمون تضعیف ملتمون جنایت است توجی حماقت است تکمیل رسادت است برای تکمیل گوش و شنوا زبان بینا چشم دبان گویا چشم بینا و دل قوی میخواییم که همدیگر رو تحمل کنیم انشالله. انشالله خیلی ممنونم حالا شده یک بخش دیگه هم با اتون گفتگو خواهیم کرد خدا غمتو رو ازم نگیره تو رو ازم نگیره خدا غمتو محلمه تو سین سین خب یک بخش دیگه در خدمت اوجات الاسلام و مسلمین استاد لاجوهدی هستیم و اون بخش رو معرفی یک کتاب به پردازی مای لاجوهدی خواهیش میکنم من به ذهنم رسید کتاب شهید بزرگوار مرحوم آشومین ایجاد در رابطه با هم نقل تاریخیست و هم تحلیل تاریخیست بله این شهید بزرگوار با اینکه کتاب قبل از انطلاق به حساب تعدین شده و چاپ شده اما با نگاه تیزی که ایشون داشتن تا که در این جلسه بهش پرداختیم و دقیقاً ایشون توضیح دادن جریان بنی امیه یا خیلی خوب توضیح دادن شرایط امام حسن و پرداختن به تاریخ آقا عبدالله برای نسل جوان ما که دنبال پاسخگویی به سوالات خودش هستند دوست داره این سوالات رو در با شعور به این جریان حرکت آقا عبدالله به پردازه فکر میکنم این کتاب برای من که خیلی مفید بوده من قبل از انگلاب شده چل سال پیش این کتاب رو دوران دبیرستان بودم مطالعه کردم واقعا اثر خوبی داشته رو من خدا رحمتش کنه مرحوم شهید نجات مرحوم آشیمی نجات از کنم شخصیتی ارزشمند، توانمند، متفکر، دانشمند و واقعا مجاهد بودن خدا رحمتشون کنه در این قروب جمعه کتابشون هم بسیار عرضشمنده آستان قدس رذبی از کنم خدمت شما زاهرن سال هشتاد و بانده. هفته بله بله سال آخرین چاپش دست داده زاده بله چاپای متعددی داشتن استفاده کنم خصوص نسل جوان رو و حتی روحانیونی که میخوان استفاده کنن از تاریخ با عبادلدار رو من ارجاع میدم به این کتاب شریف از این کتاب استفاده کنن روحشون هم شاد امیدوارم که خداوند ما رو با این عزیزان محشور کنه غروب جمعه هست سلامی با آقا امام زمان علیه السلام داریم و امیدوارم که آقا ما رو مشغول انایات خودشون قرار بده اللهم اجل و الفرج کن فرار و من و الناس و انصارهی و السلام علیکم و رحمت الله من اینجا در مزاهم, مزاهم استفاده بردیم از کلامتون خیلی ممنون اینشالله فردا هم باز خدمتتون باشیم از کلامتون بحره بریم خدا نگهت آزتون باشه چن دورا خدا تبع جان عالم به فدایش وای این کسی که پیکر اون و محمد را به زیر دو بغل گرفته و با کمر خمیده و چهره درهم شکسته و چشمان گریان آن را به سوری خیمه میکشاند حسین است و زینب سلام الله ها که از خیمه همه چیزا می بیند میگوید حسین جان رها کن دو قربانی کوچک را رها کن مرا آنقدر به من فکر نکن من اصلا این دو ستاره کوچک را در مقابل خورشید تو نمی بینم بیا ببین که خم به ابرو ندارم و قطره ای عشق بر مژگانم نی این زخم علی اکبر توست که دلم را مجروح کرده است حسین جان این قلب من و نگاه تو ای, تنهای من ای قدایای بی سر بشن کنار تو رو یه یزه ها مسافر ما در بشن مسافر بشن الهی گل ها پر پر بشن قدایای بی سر بشن کنار تو رو ده ها ما سه درس گذشته ای که از کلام استاد دهشیری گرفتیم اخلاص، هدفداری، قیام و حفظ ارزش ها بود. درس چهارم درس امر معروف و نهی از منکر. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا ابا عبدالله. چهارمین مین درس از آشورا پیکار با منکر. یکی از فلسفه های مهم قیام آشورا مبارزه با منکراته. البته شما می‌دونید که منکر معمولی مورد نظر آشورا آفرین نبوده. مثلا هم بگید کم فروشی نکنید، نگاه به نام حرم نکنید. قضایه از این دست گرچه وجود و منکره باید نهی کرد. اما اونی که امام را به قیام و انقلاب و می داره، پیکار با منکر بزرگه. چه منکری بزرگتر از؟ حکومت فاسد مثل حکومت یزید ایشون در کنار قبر جدش عرض حال میکنه بگه خدایا تو میدانی وضعیت نیک پیش آمده اما من معروف رو دوست دارم و از منکر بدم میاد خب برای اینکه با منکر بستیزد و مبارزه کنه به پیکار برخواسته در زیارتنامه میخونیم امر تب المعروف و نهی عن منکر امام حسین شما امر معروف و نهی از منکر کردی. برای همین قیام و انقلاب تو جاودانه شد ایشون خودش باز در دعوتی که از مردم داره در خطبه هایی که میخانه باز به معنا توجه میده در مسیر راه به کربلا فرمود بگه نمیبینید حق به عمل نمیشه و باطل میداندار شده و ازش دست نمیکشند اگر اینکه کسی قیام بکنه و در راه خدا خونش رو بخواد بریزه و منتظر لقاء خدا باشه این مبارزه با منکر هم درس دیگری است که اب علیه السلام به بشریت داد نه فقط شیعه و مسلمانان به بشریت که هر گامون کرد زیاد شد و میداندار شما با آن به مبارزه برخیزید امیدواریم ما هم بتونیم از این درس لازم رو بگیریم انشاءالله دوبار ن اگر زنی باید دوبار را اگر از حسین بگیرم چ کنم بی عشق حسین اگر بمیرم چ کنم فردا که کسی را به کسی کاری نیست، دامان حسین اگر نگیرم چه کنم خدای نگار مجالس ما مجالس حسینی یعنی مجالس ضد ظلم مجالس ضد سلطه مجالس ضد شمرها و یزیدها و ابن زیاد های زمان موجود زمان حاضر معناش اینه این استمرار ماجرای امام حسین است به امروز دنیا پر از ظلم و جور است شما ببینید چه می در فلسطین چه می در عراق چه می کنن در کشورهای گوناگون چه می کنن با ملت های دنیا چه می با فقرها چه می با سروت های ملی کشورها چه می ابعاد عباد عظیم حرکت حسین ابن علی علیه السلام شامل همه این میدان وسیع می شود